آیه 35 احقاف و صبر صبر کنید کما صبر اولو العزم من الرسول کما اون که اولول العزم از رسولان صبر کردند صبر اولول العزم از رسولان چگونه بود چه عذیتی به انبیا و رسولان رساندند تا حدی که من در تاریخ پیغمبر می دیدم خیلی عجیب بود داشت قناعیم جنگی رو تقسیم می کرد المال مسلمین رو بین مردم تقسیم می کرد. یکی از این افراد سریح آشکار بلند در میان جمع گفت این انسان پیغمبر رو به اسم در تقسیم این قناعیم نسبت به سهم من خدا را در نظر نگرفته است بالله. نسبت به پیغمبر اسلام یعنی برای شندرغاز مسائل مادی که توقع نابجا داره این گونه دل پیغمبر رو به درد میاره حتی داره که رنگ چهره پیغمبر قرمز شد رنگ چهره تغییر کرد که اینها چه تهمت هایی به من پیغمبر میزنن در رابطه با من ببین چگونه دارن عمل میکنن اما صبری که پیغمبر کرد و علی ما یقولون حجرا جمیلا که در سوره مزمل دستور به پیغمبر میدهد صبر در اینجا به چه معنیه یعنی صبر کنه نسبت به اینکه این ای حرف او نزنه خود خب حرفی که زد اینکه در اختیار پیغمبر نیست او میگه اما میتواند مکافات کنه میتواند حجاری کنه می توان نفرین نبوی شامل حال او بشه اما پیغمبر اینجا صبر میکنه